که برای افضایش سب در برابر مشکلات باید چکه یکی از چیزایی که صبر انسان رو در مقابل مشکلات بالا میبره دوری از گناه ها. از گناه وقتی دوری بکنه انسان ایمان تقویت میشه ایمان که تقویت میشه به خدا اطمینان پیدا میکنه این اطمینان باعث میشه انسان کم صبری نمیکنه و به خدا میسوره کارها رو